حكایت یکی از ملوک بی انصاف پارسایی را پرسید از عبادت کدام فازل تر است. گفت تو را خواب نیم روز تا در آن یک نفس خلق را نیازاری. ظالمی را خفته دیدم نیم روز. گفتم این فتنه است. خوابش برده به. بان که خوابش بهتر از بیداری است، آنچنان بد زندگانی مرده به.